هم شب عید فطر هم شب جمعه است امیرزاده جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی در کتاب مراقبات می‌فرمایند که فضیلت شب عید فطر کمتر از شب قدر نیست امسال خب ماه رمضان خیلی پرباری بر ما گذشت به همدلله هم شب قدر شب جمعه بود هفته گذشته شب قدر شب جمعه هم شب عید فطر امسال شب جمعه است دیشبم شبم گفتم خدا برابر با همه اون تعدادی که کل این ماه و شبای قدر آمرزیده و از آتش جهنم آزاد کرده معادل همشون امشب می آمرزه و از آتش جهنم آزاد میکنه همه ماه یه طرف این یه شب یه طرف خدا عیدی میده دیگه تو روایت هست کمترین عیدی که به روز دارایی ماه میدند اینه که گناهاشونو میامور زند اگر که برین از نو شروع کنین مثل روزی که از مادر متولد شده برین عملتونو از نو بگیرین خلاص امشب شب, شب احیاء شب عبادت قدر امشبو بدونین شالله خدا ایدی کامل خدا ایدی هم بخواد بده به دست ولیش میده که امام زمان هر واقعونها این الان همه کاره حجت ابن الازنه دیگه امام عصر همه کاره اونه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 دعاهای ما رو به آبروی اون حضرت در این شب عزیز مستجاب فرماید اموات و گذشتگان همه ما رو امشب غریق رحمت فرماید یه سلوات دیگه هم مرحمت بفرماید. خب تو این شب‌های نورانی ماه مبارک رمضان، ماه شرح کوتاهی رو عرض می کردیم به حول و قوه خداوند البته مطابق سنوات گذشته بر موائز و فرمایشات درهربار امیر علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام در نهجل بلاقه نامه سی و, و شبهای و قبل ارز کردم که این نامه سراسرش مملو از مطالب حكمتآمیزه که امیرالمؤمنین آماده کردند برای فرزندشون حالا ما دیگه فرازهای پایانی این نامه هستیم امشبم یه جمله از این فرازهای پایانی در دنباله عرائز گذشته یه جمله دیگه از این نامه شریف رو یه شرح کوتاهی عرض میکنم دیگه به همین اکتفا میکنیم قسمت ما از این نامه راست همینقدر بوده حضرت به فرزندشون میفرماین که اتره انکه واردات الهوموم به اذای صبر و حسن الیقین هم خیلی جمله ارزانده برای همه مفیده. می فرماید که این حجوم اما اندوه رو بالاخره دنیا اینطوریه دیگه دنیا پر از گرفتاری و غم و قصه است همش که دنیا به کام آدم نیست این آدم داغ می‌بینه گرفتار میشه شکست می‌خوره یه شب مثلا اینجا پیش اومد تو این سی شب گفتم خدا چقدر قسم خورده که ما باور کنیم که دنیا همش گرفتاریه توقع... اصلا این قلطه که ما توقع آسایش در دنیا داشته باشیم حتی اون شب گفتم بعضی دیدم تو این فضای مجازی هم گذاشتن اینو آرامش تو دنیا هست آسایش نه آرامش غیر از آسایشه بله امام حسین روز عاشورا ام آرامش داشت با یاد خدا پشتش روزو بود به کوه یعنی میشه آدم آسایش هم نداشته باشه هم این جوانای ما تو جنگ با اون همه گرفتاری و داغ و کمبود و اینا آرامش داشتن خیلی از آرامشی که ما الان نداریم تو این امنیتم نداریم ما هم اونا رو دیدم هم نسل امروز رو دیگه هر رو من دیدم دیگه اونقدری که اونا آرامش داشتند جوانهای این نسل ندارند با همه امنیتی که الان هست چون یاد خدا در اونا قوی بود اینا هم الان نراحت رو چهار تا اینجا آمدن ها و اینا همش تو فضاهای مجازی چیزهای دیگه هند اینا خودش آرامش انسان رو میگیره خود اینا استرس میاره استراب میاره بقید آدم از زندگی لذت نمیبره خیلی رفاه دارن اما از زندگی لذت نمیبرن مثلا ماشین های گرون قیمت دارن خونا، اما خدام تو قرآن گفته منعرز این ها نسخه های قرآن اینا رو باید بقاپ این جوان چون خدا گفته من ارز عن ذکری فان له معيشه زنقا میگه کسی بخواد از یاد من رو برگردونه روزه بخوره نماز نخونه همین کارو که الان نسل امروز جوانای ما دارن متاسفانه میکنن یعنی کسی بخواد از خدا رو برگردونه من زندگیشو تنگ میکنه نمیسارم از زندگی لذت ببره پولدارم هست این پولدارم هست اما خون گریه میکنه اصلا خودکشی میکنه چقدر آقا آدم سروت من خودکشی میکنم میگن ما بمیریم بهتر از این زندگی همه چی هم دارن اما چقدر آدم ها هستن مثل حضرت زهرا توی یه زندگی محقرانه توی ز... یه خونه کاگلی که خیلی شبام گرسنه میخوابید بی بی اما زن آرامشی دارن مثال زدنی اصلا نظیر نداره مثلا یه بار من دیدم از تعمیر آمد خانه شون به حضرت زهرا گفتن که یه مقدار برا من غذا بیار من ضعف کردم و اینا بخوام خب زندگی اصلا داره اینطوری بوده بی بی فرمودن قسمم خوردن فرمودن به خدا قسم علی جان سه شبان روزه نه خودم چیزی خوردم نه بچه اما زندگی آرام عشق دنیا رو می کردن. با یاد خدا ببینید توجه ببین دنیا ببینید توجه ببین دنیا اصلا جای آسایش نیم آرامش چرا؟ خاطر من تو روایت دیدم کسی دنبال آسایش تو این دنیا بگرده نادونه جاهله دنیا رو نشناخته همین نشون دهنده اینه که دنیا رو نمیشناسد هم تو این سی شب شب هم اینو گفتن دیگه به خاطر این خدا قسم میخورد لا اقسمو به هاز البلد قسم به سرزمین مکه و والدن و ما ولد قسم به اون پدر و پسری که این سرزمین رو بنا کردن ابراهیم و اسماعیل لقد خلق نل انسان فی کبد ما انسان رو تو رنج و سختی تو دنیا خلق کردیم دنیا همش غمه نم نمی گرفتار میشه منتوجه داغ میدینه نمیدونم بکامش نیست همینی که الان میبینید بعضی هم نادونند ما تجربه داریم ما محاسنمون سفید شده ولی خب ببینیم جوان وقت به هم دارن صحبت میکنن گوش میدم من خن... تو دلم خندم مید. مثلا به رفیقش میگه که دکترامو بگیرم دیگه راحت میشم هم <تصفح> میگم ارده حسابی اصلا همه دکترا دارن خون گرده میگن اصلا برو با دکترها اصلا دکترها اتفاقا میگم بهترین دوران ما دانشجوی من بوده تو تازه حالا حاله میدی من دکترشم کیف میکنم. یکی میگه صاب خونشم دیگه این خونه رو بخرم از این مستجلی نجات پیدا کنم دیگه راحت میشم یکی ما همه صاب ها بنده های خدا دارن خون گریه میکنن برو با چهارتشون مجبورت کن. یکی میگه زن بگیرم دیگه راحت میشم میگم با اونا که زنگ گرفته رو بدارم اون گریه میکنه. <تصفيق> یکی میگه نمیدونم برم اون بره آب راحت میشم میگم اون بره آبی ها همه دارن خون گریه همه مرز قند دارن همه چربی خون دارن همه دارن خون گریه میکنن دنیا آقا ازش نیست ماهیتش اینه بله اگه میخوای راحتشی بریم بهشت بعد اینو بگی بگی اشالله بریم بهشت دیگه راحت میشیم بره اینو قبول میکنم من میگم این درست چون پشتی وقتی میرم تو بهشت، بمیرم هم نه بعضی هم, هم میگه بمیرم راحت میگم اگه بمیری راحت میشی تازه فشار قبر میگه صد رحمت به سلطان دنیا رجوع. اونجا میگه یه مورفینی میزدن اینجا ازا کسی نی مورفین بزنه فقط فشار میدن <تصفح> نه پزشکی هست نه نه کسی است به دادمون برسه اونجا اقلا یکی میاد همدردی میکرد یه ملاقاتی داشته این اومد میگفت صورت تو ماش میکرد میگفت ایشالله خوب میشی اونجاست کسی ملاقاتی هم نداره ارحم ارحم فی هاز ال بیت الجدید قربتی امام <تصفح> زنونی بار مثل بارون گریه میکرد خدای به من رحم کن وقتی منو تو این خونه جدید میذارم به قربت من به تنهایی من به بی من اصلا اوج کار دیده اونجاست که تو میگی من بمیرم راحت میشم بله اگه بگیم ایشالله میریم بهش راحت میشین من قبول دارم بله ایشالله با امام حسین محشور میشین من این قبول میکنه؟ به اشتیه وقتی میرن تو بهش میگن الحمدلله لذی از هبه انل حزن خیلی قشنگ این آیا میگه الحمدلله دیگه گرفتاری ها تمام شد پشکم میزنن دیگه میگن آقا دیگه راحت شد این راحتی درسته اونجا دیگه چربی خون نی اونجا دیگه مرزقن نی سرطان نی داغ اولاد نی طلاق نی این طلاق برویم آقا خانواده ها رو به کجا کشونده؟ خون گریه می خانواده ها یه خود برو باشن مشورت کن ببین آقا دلشون خونه اونجا دیگه این چیزانی اما قرازم این هست توجه بفرمایید امام میفرماید که پسرم دنیا ماهیتش اینه داغ می‌بینی، گرفتار می‌شی، از همه طرف غم ها قصه ها بهت حجوم میارند چجوری این رو از خودم دور کنم به دو چیز میفرماید یکی به نیروی صبر. <تصفيق> توسد سبر من توی حدیثی دیدم به امام جواد گفتند ما رو نصیحت کن امام جواد آقا کل عمرش 25 سال بود 25 سال عمر کرد دیگه شاید اون موقعی که گفتن نصیحت کن 12 ساله بوده من نیرم 9 سالگی امام شد او 8 سال و چند ماهش بود امام شیعان بود امام ها نمیز احمد شای قاجار که 10 سالگی شاه شد نه اون که راش می بردن تو کالسکه می آوردنش می بردنش نه امام شد یعنی شیعه رو هدایت همون موقع که امام شد آمد مکه علمای شیعه جمع شدن آقا رو آوردن تو یک جلسه تو یک جلسه ده هزار از قوامز علوم که توش مونده بودن سوال کردن همه رو جواب دارن نه امامت می کرد. نه که یه دراشت می بردن ده هزار بزرگان شیعه مثلا تو, این تو اصر ما مثلا مثل شیخ مرتزای انصاری اینا جمع شدن چیزایی که تو علم براشون حل نمی‌شد، تو یه جلسه ده هزار داشت سهار کردن همه رو باسه حالا یه جلسه منظور نیست که حالا مثلا شما بگین چار ساعت ها شاید این جلسه یه هفته طول کشته مثل این سمینار هایی هست که پین و طول می گشه. شاید از می رو فردا دوباره می اما توی یه مجلس منظور یه سمیناریه ده هزار اصلا تمام این شیعه عظمت او اقرار می کن این نو سالش بود از او یکی سال کرد آقا منو رو نصیحتم کن عزرت امزرم عمل می کنی یا حوسته خیلی حوض دارن دیگه مثلا میخواد بره یه جا دیگه بگه بگه امام جواد گفتن یه باعث دنبال اعتبارن میگن میگه از دولب مبارکش ما لبش ماج میگن خوش به حالت واقعا از خدا آقا نشدیم میگه آقا میخواد گوهر میخواد به کار ببندی میخواد پوز بدیده جمعه الان اینطوری هم مثلا میگه میلزا اسماعیل دولابی خودش به من گفت خصوصی ام گفت این نمیخواد آقا رو ببره خودش رو ببره بر. شما میگی که آقا مارم دعا کن یعنی میرزا تو گوشت میگفت میگه آقا مگه یه بار میگفت کارش این بود میگه یعنی تو میگه آقا شبایی باش داشتی. حالا پس مثلا... گاهی بعضی ها میگن آقا اینا رو میگن سن نمیخوره میگن بخوا تو چند سالت که میرزا رو دیدی تو اعتمانا اون بخوا تو مادرت بودی و فوت شد. تو چند سالت بود که میرزا رو دیدی الان بعضی هم این اما قرد گفت من از رفت به بکار می گفت آقا, آقا سه بار ظاهرم فرموندن گفت آقا بکار می گفت آقا بکار اولیش رو من فقط میگم فرموندن توسط صبر. صبر رو بالش خودت کن سرتو بذار رو بالش صبر. راه دیگه ای نیست من خیلی آقا برای نسل جوانمون ارزم خیلی ها اول زندگیشون خوب نبود خیلی با هم مشکل صبر کرده الان خوب شده دیگه یه خورده صبر کن زود طلاق میدی چرا من اولش خوب نبود دعواشون میشد زندگی تلخ میشد خب صبر کردن صحب. الان قربون صدقه هم میرن الان دیگه عاشق هم شدن یه خورده صبر کن آقا خوب میشه دیگه به این توجه بکن توسط صبر این سرتو بذار رو بالش صبر یکی از برای چوبونام بگم یکی از نشانه های مهم ایمان که شاید شاید مهمترین نشانه ایمان باشه صبره نه از خودم بگم ما مولای ما امیرالمومنین تو همین نهج البلاغه میفرماید تو همین نهج از سبر و منال ایمان که رأس منال جسد مهمترین عضو شما سرته دیگه میگه داریم مو عضو... من الان به شما میگم آقا من یه رفیقی دارم 25 ساله با هم رفیقیم دست نداره قبول میکنید دیگه دوتا دست نداره ولی با هم رفیقیم رفت آمد خانوادگی داریست 25 ساله دو تا پا نداره 40 ساله با ما رفیقیم دو تا پا نداره دیگه دو تا چشم نداره با اما من میتونم به شما بگم که من یه رفیقی دارم سی ساله با هم رفیقیم سر نداره این سرکاریه دیگه میخوان من تو رویت دیدم میخوان اقل یکی رو امتحان کنی از این چیزا براش بگو اگه قبول کرد بدن پار سنگه چیزی به نام مخت و این تلمه این مثلا امتحان کنیم این اقل شقده دیگه بگو من یه رفیقی دارم با هم رفت آمد داریم سی ساله ویلام تو شما داره گایم موبیلاش هم رفتیم سر نداره اگه گفت چه جالب اکسم ازش داری شما واسه بدون بگو یه نشون بده میگم عکسش نیه بردم تو آلبوم خونه مونه حالا ایشالا یه روز اومدی خونه اکس بده میگه بری اومدم حتما این نشون بدی وا... در جام بره بگه بگه این حاجه ها میگه من یه رفیقی دادم سر نداره عکس یادگاری هم بشته سر های سر کاریه دیگه آقا یعنی اگه من به شما گفتم آقا یه آدمی خیلی مومنه نماز شب نمیخونه آقا, آقا مومن نماز شب نمیخونه دیگه م... میگم یکی مومن خیلی مومنه اما ماه رجب روزه نمیگیره آقا میگه آقا نمیگیره دیگه ماه رجب آدم مومنیه نماز شب نمیخانه اما اگه من به شما بگم یکی از خیلی مومنه اما ای اینه که صبر نداره میگن آقا این سرکاریه این مثل اینه که میگن سر نداره ببوی آقا این معلومه که مومن نیم مومن نمیشه از صبر، و امام اینو دارد میکن از صبر و منال ایمان که رأس منال جسد بعد فرموندن لا جسد لمن لا رأس له. جسدی باقی نمیماند که سری در آن نباشد ایمانی باقی نمیماند که صبر توش نباشد اصلا مهمترین ویژگی ایمان صبره از این ببرم خون جلوتر اگر میخواین به ایمان کسی پی ببرین ببینین صبرش چقدره. اما میخواین ایمان یکیو بفهم مثلا من الان میگم آقا ایمان حضرت زینب چقدره بگو به اندازه صبرش بله زینب رو اگه میخوایی بشناسی از صبرش بشناسی آقا ایمان علی ابن عبی طالب چقدره به اندازه صبرش. ایمان فاطمه زهراد چقدره به اندازه ایمان حسین ابن علی چقدره به اندازه سبرش سبره آقای اومام اگه میتونی شما میتونی بچه شیرخارتو بیاری خوناش بریز رو سبت اصلا دل میکنی دینو میری به خدا ما که مشکلی نداریم من... کوفه می به این بچه رو گرفته بود دور دستش خونای اصقر می ریخ می گفت حون علیه برا من آسونه این آسونه آقا اینا آسونه برا خدا دارم میدم دیگه دور نمیندازم که نمیدونم روم نمیشه روم بر بگم آقا هم که قاچاقچی پریاگ نشده در راه خدا رفتید الان آدما هستن بچه دارن تزریقی تو خیابون میافته میمیره اون اون بیچاره کننده آدم آقا بچه ای داشته باشد این با تضریق از دنیا بره تو گوشه خیابون همه آدم بچه مثل اکبر داشته باشه بره با خدا معامله کنه این جایگاه عظیم و بیدا این افتخار باید تبریک بشه بگی تو, تو انقلاب ما آقا یه خوبی که بود به پدر شهید تبریک میگفتن میگفتن خوش با حالت با بچهت گل کاشد خوججی شد این اون روزی که این پدر ججی مشد مشد با ججی آوردن مشهد منم وارد مشهد شدم منم با بودم. اونم آمودم چه استقبالی از این شد چند هزار تا فقط خادم خادم همه هم گل به دست یکی هم به من میگف اینا رو سوا کردن همه پدر شهیدند یعنی تو خادما گلچین کردن پدر شهید با لباس اومده بودن استقبال این هر کی این رو میدید بغل میکرد بعضی دستش رو ماش میکردن بعض... میکشید البته بعضی کتش شما ماشین کردن بعضی می مگردن که خوش با چه بچه ایست و تبریک بگی دیگه بگی آقا تو گل کاشتی تو چه کردی همچین بچه ای تحویل بشری هست این خوبه یا بچه ای که اونجوری از دنیا میره که حالا روم نمیشه بگم این توجه بفرمایید حالا قره زمین است می فرماید که این قصه ها رو این سختی ها رو با صبر ببین از صبر منال ایمان کر راس من میخواین به ایمان کسی پی ببرین صبرش رو ببینید من برای جوونام بگم بذار باور کنن آ کسی هست تو این عالم خدا به اندازه حسین بن علی دوستش داشته باشه داریم بگین شما بگین کسی هست تو این دنیا به اندازه حسین گرفتار باشه بس معلومه اینا لطفه آدما به همون اندازه که پیش خدا محبوبن گرفتارند گرفتاری رو بدت نیاد کسی از تو این عالم آقا به اندازه امیر محبوب باشد کسی از به اندازه علی گرفتار باشد کسی از به اندازه زینب کبره پیش خدا محبوب باشد کسی از به اندازه زینب داغ دیده باشد پسرش میگه که نازک نارنجی نباش ببینید اینا رو درجه بهت میدن بالا میری رشد میکنی کمال پیدا میکنی این وا... حجوم غم ها رو قصه ها رو به نیروی صبر از خودت دور کن درجه میگیری نمره بهت میدن امتحان دیگه زینب هرچی سبر میکرد درجه میگرفت. تا یه شب گفتن یه شب گفتم رفقه بودن اگه 124,000 هزار پیغمبر جایی باشن اگه این خانوم چه همه بلند میشن وای میسن درجه میگیریم بالا میری زینب با نیروی صبر به اینجا رسیده دیگه این خدا خدام تو قرآن دوبار گفته یا ایوهاللزین آمنو استعینو به صبر و سلام از از این نیروی عظیم صبر کمک بگیرین و از این نیروی عظیم نماز صبر من نمیدونم اینو بگم صبر یعنی اعتماد به نفس که الان تو روانشناسی زیاد میگن صبر یعنی اعتماد به نیروی درونی نماز یعنی اعتماد به خدا بالاتر از شو الان همش میگن اعتماد به نفس اعتماد قران آقا فوق اعتماد به نفس اعتماد به نفس اینه که شما بگید من میتونم من میتونم بر این مشکل فائق بیام من میتونم این مشکل رو رد کنم من میتونم بر این مشکل پیروز بشم اما خو... انبیا گفتن اینو داشته باش فوق این اعتماد به خدا که اون نماز امیرالمومنین هر موقع آقا چیز سختی براش پیش می نماز میخوند یکی از جایی که نماز خون کجا بود؟ اون جایی که فاطمه رو به خاک میزن <تصفح> اون شب خیلی سخت بود کمر شکن بود بدن رو زمین بوده درکت نماز خوند از خدا مددگو خدا کمک کن خدا کمکش کرد امام حسین کجا درکت نماز خوند؟ اون جایی که اسقه رو به خاک میزن <تصفح> این بدن رو دور اینا از نماز کمک میگه الان اینا جاش تو دنیا خالیه نمیذارن آقا ما اینا رو واسه مردم بگیم صدای ما به جایی نمیرسه ابو علی سینا آقا هر وقت توی مشکل علمی تو توی مشکل تحقیقی کم می آورد نماز میخود مثلا میدید مشکل حل نمیشه میرفت دوره کردن خدا الهام میکرد مشکلش حل میشه. الان تو تحقیق تو مؤسسات تحقیقاتی پژوهشی ما کجا نمازخونه اصلا داره میگه یکی آقا بگه آقا من گیر کردم نمیدونم انرژی هسته‌ای چیه آقا نمیتونم از خدا مدد بگیرم بگم خدایا به ما الهام کن همونجوری که به نیوتن الهام کردی بشر آقا توهی کردن از معنویات این توجه به من نمیذارم اگرم اگرم من برم تو یه مؤسسه تحقیقاتی اینو بگم مسخرهم میکنن جوری ذهنایی اینا همه هم لبخند میدن میگه این آقا به جای که میگه بریم مطالعه کن میگه برو نماز با مرد حسابی مطالعه کردی نرسیدی به جایی دیگه ما میگیم اول مطالعه کن اول مطالعه کن مشورت کن ما رو میگیم با استادت مطرح کن با رفقات مطرح کن حالا که نشده دیگه توش موندی از خدا کمک بگیر فوق اعتماده به نفسه که اعتماده به نفس اینه که من خودم مطالعه می کنم در میارم تحقیق میکنم حل می حالا نشد ابو علی سینا میگه من میتونم از خدا مدد می و خدا راه حل جلوی من میذاشت استعینو خدا هم همینو رو میگه استعینو به صبر و صلوات توجه بفرمایید یه... یه شب اینجا گفتن دیگه یه عارفی بهش گفتن که من تو حالاتش می خوندم چند روز پیشم می خوندم اون موقع که گفتم شاید همون رو خونده بودم یه عارفی رو حالاتی بهش گفتن سلطان خون داری چقدر خدا رو الحمدلله ناگهانی نموندی چقدر چرا آدم‌ها یه دفعه ایست قلبی می‌کنن هی خدا رو شکر می‌گه هی هم میگه الحمدلله خدا به ما مهلت داده جم جور میکنیم جور اگه ایست قلبی میکردیم. هشت سال میگم بعد از اون زنده بود در حالی که دکترها 6 ماه بیشتر نمی‌مونن یعنی همین که صبوری عمرت هم طولانی میشه اما اگه میترسید همون 6 ماه میشد یه ما. از ترس میمرد آدم آقا از اد ترس بمیره خوبه الان بعضی آقا بهشون میگه یه تست سرطان بده 6 کیلو کم میکنه میگم آقا نه گفتین سرطان داری که برو تستش میگه نه یه چیزی هست بی بیخود نمیگنده میگه نه خواب دارم نه خوراک دارم تو اداره ما بود دیگه چون 20 روز گفتن میسن که 20 روز طول می کشه تا جوابش بیاد کشت میکردن تو این 20 روز آقا اصلا نهی قلیون شد خب این زود می میره دیگه اما یکی میگه خب الحمدلله ما اگه ایست قلبی می کردیم و ناگهانی می خوب بود خیلی یه یرفه قلبشون باییم است می میره الحمدلله به ما مهلت دادن حالا که هستیم فعلا توشه جمع میکنیم بسیعت رو میکنیم کار بنام به رفتن دیگه این میشه صبر یعنی گرفتاری ها رو با نیروی صبر قمق و رو از خود و حسن و یقین من اگه اجازه میدید چون دیگه نام میدونیم معنی کردنش واقعا هم کار یه ساعت و دو ساعت نیست اما اینم یه کلامه میگم حسن و یقین چی؟ یعنی بدون اینا مقدره ببینید من نوشتم قلن یوسیبنا الا ما کتبالا میگن اینا رو برا خدا بر ما اینجوری نوشته تقدیره. می مقدر ما این بوده. شانسی نیست. شانسی بگی اعصابت خورد میشه. ببین بگن آقا تو بعد شانسی آوردی سرطان گرفتی رفیقت نه خوش شانس نگرفت. نه اینا میگن نه شانسی نی. برای ما این جور نوشتن برای اون. برای اون اون خوبه برای ما این خوبه. خیر اون این بوده که بمونه خیر من اینه که برم. خیلی آقا میمونن جهنمی میشن خیلی ها میرن بهشت یاد چقدر آدم ها الان زیر خاکن تو بهشتن خیلی ها موندن هی دارن گناهشون رو زیاد میکنن اصلا ما نمیدونیم خیر تو چیه که میگن هرچی خدا بنویسه لن یصیبنا الا ما کتب الله تو این دعای امین الله زیارت امین الله که مال امام زین العابدینه خیلی آقا زیارت فوق العاده ایه اونجا دعا میکنه اللهم مجعل نفسی مطمئنتن به قدرک خدای ما رو از اونایی قرار بده که اطمینان بالای یقینا که من اطمینان داشته باشم هرچی به سرم میاد تقدیر توی تو برای ما اینجوری نوشتیم ما بعد حالا وقتی رسیده به اینجا بر راضیاتن به قضا خدای از اونها قرار بده که ما به مقدرات راضین چون و چرا نمیگیم اینجوری صلاحینه دیگه خدا برا ما اینجوری نمیشه خدا برا ما اینجوری خواسته تقدیر ما این بوده راضیاتن به قضایک اول مطمئنتن به قدرک راضیاتن به قل لن يصيبنا الا ما كتب الله حلنا. امام حسين اینجوری بود میگه برا من اینجوری نوشتن من شهادتم بعد کربلا باشه اینو برا من نوشتن منم راضیم ام تو گودال آقا این خاکا رو زیر صورتش جمع میکرد خاکای داغو میگه رزن به رضائک اینجوری نوشتی منم هم همونی که تو میخوای راضان به رضایک تسلیما ل لا معبود سواک سختش هم نبود ببینید اون مصیبت های بزرگ رو هضم میکرد امام حسین چرا میگه خدا بر من اینجوری نوشته منم راضی به رضای خدا خدا هم بد نمی نویسه که حالا حالا امام بهش اعتماد کرد تو گودال آقا das شوبلان میکرد میگفت خدایا همه جوره قبول نه من تو سلامتی قبول دارم تو گرفتاری میگم نه آقا بعضی آقا غرق نعمتن هی شکر میکنم میگه عجب خدای خوبی اما دندونش که درد میگیره کفر میگه بعضی اینجوریه تو کنار مثلا سفره نشسته هفتاد نوع افطاری چیدن میگه عجب خدایی میگه چجوری ما شکره این خدا رو بیجارم یه خورده خدایی نکرده سنگ کلیه داشته باشه میگه چه وضعیتی اما امام موسیم تو گودال آقا دست شد بولم نگفت خدایا من همه جوره دون. صبح آشورای خطبهی خونده بعد از نماز صبح الحمدلله علالبعصائه و ذراب میگفت خدایا یه عمر یه جملهش این بود خدایا یه عمر تو آسایش بودم شوگ یه روزم کار گره خورد دیگه انقدر رو سینه پیغمبر بودم، انقدر قلم دوش پیغمبر انقدر ناز منو کشیدند حالا یه روزم کار گره خورد دیگه آقا مگه مال امام حسین چند ساعت گره خورد دیگه همش که حل و الواش میکردن که انقدر پیغمبر یه روز قلم دوش پیغمبر بود داشت رد می‌شد پیغمبر یکی اومد یکی اومد به امام حسین گفت چه شطور خوبی داری نعمل نعمل مرکوب مرکوب بکن ببین خب خیلی تعریف از امام حسین نیست این جمله آقا گفت چه شطور خوبی داری پیغمبر همین هم دلش نشد گفت نه اینجوری نگو به من بگو چه سواری پشت تو سر من باید افتخار کنم حسین پشت دو سوار نگو ب... مرکوب خوب به من ببو خوش به حالت چی سوارت شده امام حسن این بود دیگه هست زینبم تو گودال همین یومون علا صدر المصطفى گفت چقدر دیدم رو سنیه پیغمبر میشنیم حالا یه روزم اینجوری شده دیگه یه روزم اینجوری شد دیگه بو خوشیهاش شک امروز هم کارگره خورده شد. چون قسمت ازلی بی حضور ما کردن گرندکی نب وفق رزاست خورده مگیر این همه نعمت حالا یه روز هم کارگره خورده دیگه این همه آقا تو ناز و نعمت بودی حالا یه روز هم دندونت درد گرفته دیگه آقا به جای اون همه نعمت با نیروی صبر و حسن یقین گرفتاری ها رو از خود دور کن غم و اندوه رو از خود دور کن روبروی اینا وایستا دیگه اگه اجازه بدین شب عید هست همین من به همین اکتفا کنم ها رسمشون اینه دیگه شب آخر میرن در خونه است زهرا و شب جمعه هم هست. شب زیارتی امشب هم شب عید فطره شب زیارت ما افزل اعمال جوون ها امشب بری کربلا یه سلامی به حسینه از این بالاتر نید کمیل بخونی خوبه ابو همزه بخونی خوبه اما افزل اعمال امشب که آدم اصلا امام حسین زیارتنامه مخصوص داره برای شب عید فتر نگاه کنید تو مفادی است. زیارت امام حسین در شب عید فتر فردام که روز عید فتره افضل اعمال اینه که سلام به حسین بن از نماز عید بالاتر. به خدا اگه نتونستی هم کربلا بری برو, برو تو بلندی زیر آسمون سه مرتبه با همین دل شکسته بگو صلی الله که یا ابا عبد الله اسم تو بنویس همراه اونایی که به امام حسین دارن کربلا سلام میدن سندان لو ف يا ابا عبد الله سندان لو ف يا ابا عبد الله اما رسمینه دیگه شب آخر میرم در خونه است زهرا واسه من واسه این معنیش اینه ترونیا میخوان بگن صاحب عزا فاطمه زهرا همینجوراما هم هم. اگه تو این یه ماه اینجا یه ماه مجلس بوده اگه تو این یه ماه شما برای امام موسیم گریه کردی صاحب ازا مادرشه صاحب ازا کیه کی دمه در وای میسته خوش آمد میگه فاطنه زهر هرکی هم داره در میره دو بی... میره بیرون بی بی چی میگه اشالله تلافی میکنه میگه طلبت دیگه طلبت من بیام تلافی میکنم. یا سلمان و یا جندب حب ابنتی فاطمه ینفع و کمعتم موتن سلمان محبت دخترم فاطمه صد جا میاد دست تو رو میگیره صد جا مددت میکنه اون با من به این توجه بفرماییم اگه شما برای امام رضا گریه کردی صاحب ازا کیه اگه برای موسف نجا اگه برای امام حسن گریه کردی صاحب ازا کی؟ اگه برای رسول الله گریه کردی صاحب ازا دخترش اگه برای امیر المومنین گریه کردی صاحب ازا همسری بقید تو حدیث کسا محور فاطمه تا میپرسن اینا چیان هم تو و ابوها؟ اسم اونا نیست این فاطمه است و باباش و بعلوها و شوهرش و بنوها یعنی مهورونه دیگه یا پسراشن یا شوهرش یا پدرش صاحب از ها عضلت زر من یه کلمه برا جوونا روزه بخونم اما دلم میخواد حقشو حیفه ها شب عیده شب جمعه هم هست شب آخر این جلسه هست دیگه بعضی ها یه دهر ما ما منبریم دیگه بعضی یه دهر نمیام ولی شب آخر رو میام خوش اونایی که این سی شب نه ولی امشب اومدن <تصفيق> خطاب اسمشو مینویسن میگن بود اینم جزگلیست <تصفيق> سی شب نه امشب اون رس خودشو شب آخره بریم شب آخره صفره رو که فاطمه میاد جمع کنه یه سیام هم به ما میده من یه جمله برای آیون اگه خانومام صدای منو رو میشنه این روزه‌ای که همیشه زن نجیب زن پاکدامن زن با تقوا جلو نامحرم جیغ نمی‌زنه هیچ وقت هیچ زن با تقوایی نمیذاره صداشو نامحرم بشنوه من از شما سوال میکنم کی نجیب تر از فاطمه چی با است؟ اما این زن حامله رو بین در و دیوار چنان فشار دادن صدای ناله فاطمه جلو این همه نامهرم بلند شد تمام کوچه اجنبی نامحرم، یه وقت صدای فاطمه بلند شد یا عبت ها پدرجان پاشو ببین با دخترت چه میکنه من همیشه میگم مادر نداشت اگه مادر داشت ناله دوم مادرش و صدا کار زنونه شد بچه افتاد این مادر باید مادرش بیاد جمع کنه اما یه وقت صدا زدی یا فزت و خزینی فضتو بیا بچه همو کشتن قد خوتل مافیه بحث محسنه فضه با این آمادگی اومد فز... محسن رو داره دیگه اما میگه تا رسیدم دیگه نه اسمی از محسن آورد نه از بحلوش تا اومدم گفت علی رو کجا بردن گفتم علی رو بستن دارن میبرن مسجد این چادرش رو به کمر بزد دنبال حیدر میدنی از سینه اشخون میچکی این دستشو انداخت کمر امیر چهل مرد از یه طرف میکشان فاطمه را آنمیکنه. خیلی معذرت میخوام از امام زمانم یه وقت نانجیب به قنفوز اشاره کرد دست فاطمه رو کوتاه. شما میدونی این دیگی؟ اینایی که پست دارن به یکی میگه داده می دونن. به یه به قنفوز گفت اما ریختن سر فاطمه. هر هرچی داشت. میزه. شرمندم حمایت من بی نتیجه ماند دستم شکست بنز دست تو وا نشد شب زیارتی حسین ابن علی شمارم کاروان ببرم یه ناله بذارید ارزم تمام اینجا مادر رو زدن تو گودال دختر رو دختر از مادر ارز برد دیغا سکینه صدا زد بابا پاشو اممو دارن تازیانه میزنن ها